بچه های آسمان. زیگران، امیر ناجی حالا دارم که چوم هست من و علی میریم بالا, بالا ها یه چرخ میزنیم هم فال و هم تماشا میر فرخ حاشمیان آقای جازه من بول میدم برنده بجم آقا تو رو قد از بهاره بریمزیم بحاره صدیقی من سخصیه تو کفشو میکنم کردی یه کفشو هم پیدا میکنی یا به با بابا میگم فرشته سرابندی ککب خانم میگفت خوهرشو بردن عمل کردن الان خوب خوب شده كمال میرکریمی دیروزم دیر اومدی مدرسه این دفعه میبخشه یک بار دیگه اگه دیر بیای مدرسه راد نمیدم موسیقی کیوان جهانشاهی نویسنده و کارگردان مجید مجیدی در کفاشی کوچیک خودش داره یه جفت کفش صورتی دخترانه رو تعمیر میکنه. پسری منتظر روی چهارپایی ای پسرک در نونبایی تافتون در حال خریدن نونه پسر از نونبایی میاد بیرون تو دستش یک کیسه نایلانیه که کفشا توی اونه و یه سفره نان هم زیر بغلش. میرسه به میوه فروشی نانو نان و بیرون در روی صندوقه میوه میذاره و خودش میره داخل میوه فروشی سلام. از اونانه بچه برو از اون زیر برده با. ممکی با چرخ پر از پلاستیک و نون خشک و کیسه های پلاستیکی دم در میب فروشی میسته و کیسه های نایلونی خالی و اضافی بیرون مغازه رو جرد کنه و میذاره رو چرخ سلام علاقه اگمه هستانه باشو ای بار کسی ماهلونی کفشه رو برداشت گذاشت رو بقیمه ویزایی روی چهر بایگه خدا بودشون شست و پنج مادرم گفت به به به مادرت بگو حسابتون پر شده اقلا بیاد کمی حسابشو رو بکنه بکنه. چش پسر از میوه فروشی میاد بیرون صفری اینان برمیداره. متوجه میشه کیسه کفشان نیست شروع میکنه به گشتن دنبال اونا یه دفعه می به سندگاه نیبه ها و سینه که پر از گوجه فرنگی و اونا رو میریزه اه اه چرا اینجوری کردی؟ چرا اینا رو ریختی؟ من مریضی بچه؟ یا شب نیست. برو دنبال ببینم. اینجا گفتم دنبال کاره. باز اینجا ده... پسر با اجری به طرف خونه میره. خونه بزرگ با اتاقای زیاد و مستاجره زیاد. ما که کرایه‌ت آخه شما تو این خونه؟ مگه دفعه حلهت خون می‌کار. لازم نیست که وقتی بیه که خودت کن. چی میکنه علی گرفتی؟ مامان بفکر بچه خوندی، چیز زمینه رو پوس بگی گفتم کفشه همون گرفتی؟ قشن دوخته؟ کجا میری؟ دارم من ببینم کفشه هی دوخته کفش نیست اله که میگی؟ نه به خدا راست میگم راحتو بودم مغازی اکبراغو سی بزمانی برخورم وقتی برگش میزم کفش ها نیست هر چی دنباشون کشتم پیداشون بهداشون کنم برانه کوم شده؟ به ماما چیزی نکو پیداشون کنم فردا چی داره برم برگسه؟ گیرانه نکن الان میرم دنبالشون پیداش کنم تووو بیا میذاریم کیشتی همیشه که نه تو خود به ما چیزی نگو علی علی کجا رفتی بیا کمک کن زیر جام کنم علی علی کجا رفتی بچا تو یه کوچه دارم فوتبال بازی می‌کنم لی برگشته نزدیکی های میوه فروشی میبینه مرد میوه فروش مشغول کاره یفاشکی میره جلو مغازی و شروع میکنه لابلای صندوق رو میگرده باز اینجا پیدا شد که مگه نباید میبرن اگه عجب بچه پوردی فرار میکنه میرسه به یه مسجد که سقاخانی کنارشه و شام های اونجا روشن کرده سلام با ما، حالت خوبه؟ خونه میری؟ یه درسته فرم بکارت اینا کلگنده، هفته اگه پایتو میست با ما زحمت چه بکشه؟ پدر علی اصابانیه و داره قن میشکنی و با مدر علی حرف میزنه شما با صاحب خونه حساب کتاب نداره من با اون حساب کتاب دارم چرا میرید دهن به دهن اون میزاره من پدر اونو در میارم من گردنشو خورد میکنم من به اون میفهمونم بی بات من سل نه ده خار ببینم اصلا شما چرا با من اینطور بازی میکنید مگر داشتی به شما نگفتی که کار نکن عصبانی نشو چرا رفتی این همه رخت لباسو شستی اون گیرم بری تو آب سک کلو میشه پسر مادرت وقتی کی تو ترا خواستی کمکش کنی چرا کمچش نکردی خانم یکی همه دو رو جرمی من میومدم چشمم کرد دستم چلاخت این کار رو خودم انجام میدادم پسر وظیفه تو توی خونه چیه ها خوردن خوابیدن از خونه در رفتنی؟ تو دیگه بچه نیستی نه سالته وقتی که من نه ساله بودم به پدر مادرم کمک میکردم سرم من عصبانی میکنه هان؟ تو مجه عقل نداره تو مجه شعور نداره تو مجه نمیفهمه خیلی خواه خودتو اینقدر ناراحت نکن زهران لغاسه رو از روی بند برمیداره و میبره تو اتاق این بچه نم هم نمیدونم چرا از امروز صبح تا اله هم قد کسله زهر و مادرجون یه چای برای بابا تو بریز بیارم نکنه بابا با این که من از صبح تا غروف این همه چای میدم ولی چای زهر خانم یه مزهه دیگه میده دندون قندونه نیاورده خب این همه قند اینا مال محسده مال مردمه پیش شما امانته حشو از تو قابلمه دو تا تیکه نبات بردار قند خونه تمام شده دو سه روز سراغ این دریانی میرم میگه اعلان کردن اما ما نیاوردیم اون ولش کن اون با رادیو اخبار کار نداره اون هر موقع دوست داشته باشه اعلام میکنه شما گوشی رو بذارید بیرون من فردا از فروشگاه میگیرم میارم علی داره تکالیف مدرسه رو مینویسه زهر و دفتر و کتابشو میاره میشینه کنار علی و توی دفتر بروش مینویسه من فردا چطوری برم مدرسه و دفتر رو به علی میده اردو. یه سری به این فروشگاه تون بزن شیر بچه تمام شده براش یه بوتی شیر بخر می نباش زن رحم آقا دیسک کمر داشت رفت عمل کرد بدتر شد میگن گن دیسک کمر نباید عمل کرد باید باش مداره کرد یعنی می چیکار کنه علی برای زحمه نینیسه که رزنه. با دم پای. نشه دوستو شما کار نکنید. از کار باشه منو بدجه ها هستید. انجام میدید منی ککب خانم میگفت خوهرشو بردن عمل کردن الان خوب خوب شده شما این فطر عمل از مغزتون بیرون کنید من نمیخوایم شما ناقص بشه بیافته توی خونه اینشالله ازافه کارم که بگیرم یه خونه باشه. با ها پای. زهرا با اخم به نگاه میکنه و مینویسه علی خیلی خجالت هستی. کفش منو گم کیا؟ به بابا میگه. از دوستانم <تصفيق> <تصفيق> اون <متار> هم کار من خوشه چچه با هم هستین هر موقع که مریض بشه اصلا به دکتر نمی میره تمام از این داروهایی که یا استفاده میکنه همیشه هم از این داروهای گیاهی عادی یه دارویی گیاه داروی یا میخورم خوب میشم <تصفيق> همینجوری برنامه هم دیگه تو دفتر نمی نویسم و دفتر بین اونا رد و بدل میشه آخرش علی می نویسه تفشای منو و به بابا نگو تو رو خدا و یه مداد رو دفتر زهرا میذاره و میگه این مال صوبه و زهرا لباس پوشیده و کوله پشتی به پشت میخواد بره مدرسه بیرون در اتاق کفشای کتانی علی رو بر میداره اونا رو میپوشه وای کفشا برای اون بزرگ زهرا به مدرسه نبسید تو مدرسه بچه ها به ترتیب باید از روی خطهایی که کف حیات کشیده شده بپرد زهرا نگرانه نفر بعد میلو شما فرشت شما نفر بعدی مریم بعدی نفر بعدی بعدی با یکی از بچه ها افتاد جایی که درد نمی کنه ببینیم بچه ها یکی از دلایلی که فرشه نتونه رو خوب انجام بده به خاطر کفشاش بود من بارها به شما گفتم یکی از نکات ورزش کفش کتونیه که متاسفانه می بینم بعضیاتون نکوشیدین و بعضیاتون هم خوب پوشیدین خب بهاره حالا شما نفر بعدی نفر بعد زهر شده و علی توی کوچه کیفه دست منتظره آخه علی نوبت زهریه مدرسی زهرا تعطیل میشه و زهرا با سرعت به طرف خونه میره اشو میپوشو و به دو به طرف مدرسه میره. علی از مدرسه برگشت خونه زهره توی حیات کنار حوز داره زرفا رو میشوره به موقع درسیدی مدرسه؟ زن خورده بود تو و برده کم تو شدم زود اومدم؟ زرا به مامان که چیزی نگفتی؟ ندیم که خیلی نمیگم دیگه کبچه خیلی کثیف شده مروم نمیفته پوشمش؟ واسه ذایی باو نمیاری یا؟ نه به خود کفچه خیلی کثیف شده. <تصغی> خب میشیش. <تصاف> علی برای ماهیای قرمز توی روز غذا میریزه. دارن کفش رو میشوره اونا خوشحال با کفا حباب درست میکنن و میفرستن تو هوا سر توب به دست اومده دنبال علی علی بیاری تمرین کن خوار دارم یه دیگه نمیتونم میام تو تمام میشه مادر مریضه برو بابا این خانواده دور سفره نشستن دارن شام میخورم سفره بخير هم دیری فرد کنم ازیم کن به توسیم هم هم هم هم پا کردم اضافه گرفتم برای هر دوتاشو یه چیز خوب میخورم موجی بروز مشکلاتی از قبلی کمر درد. خانم سما. چه سالش تو ماشاءالله. میفرستی استراحت کردی. بعضی تو خوب شده. آره ادامه دی پدر. اکنون این پله ها را دیاک پای دار بالا نریش. در از چه سال دم استراحت خوب زهر و کتانی رو میپوشه و میره طرف مدرسه. توی رادم در این کفش رو رو و میسته باز از پشت ویترین به کفش‌های دخترانی زیبایی قرمه سفیل سیاه صورتی با حسرت نگاه کنه ما و ما مختلف ایران توی کلاس درس امتحانی ریاضی دارن کنیم ایجازه ساکنده همز وقت رو برای نوشتم به میجازی میتونیم بریم تو عجالی داشتی برای رفتن یا وقت میخواستی برای نوشتن برو زهر با سرعت به طرف خونه میره. به یه کوچه که جوی آبی از وسطون میگذره وای در حین پریدن از روی جوبیه لنگه کفش افتاد تو جوب زهرا داره تلاش میکنه لنگه کفش رو بگیره سرعت آب زیاده نمیتونه آب همینجوری داره لنگه کفشو با خودش میبره به یه جای میرسه که پل کچولوی روی جوب هست زهره به سرعت میره اون طرف پل که سری کفشو بگیره با زخمت زیر کل نگاه میکنه وای مثلا کلی آشقال هست و کفش به این گیر کرده فهر و نشسته و گریه میکنه چیه دختر خانم گریه میخونی؟ چه به نشستی؟ چیش به آجام؟ در افتره گریه پیداش میکنم آقا کمی جلوتر کاگر شهرداری بیل به دست داره کف جوب و تمیز میکنه خدا بگیرش بگیر بگیر آخه بابی لنگ کفش رو میگیره علی توی کوچه کیف به دست با دمپایی منتظره کوچه بگیر چا دید کردیم چرا خیصه؟ من دیگه این کفچه ها نهیم پیشم گفتم چرا خیسه؟ گفتت تو جوب حالا من چیم دوری با این کفچه خیص پر مردسته گفت اختیر من چه کفچه شده پام در میاد؟ تو با من گریه تو یا من صاحب سه کردی پیدا می‌کنی یا به بابا میگم بگو پیدا می‌کنه آقا خردن می‌ترسن بابا تو صاحب که حقوق پول نداره واسه قفش قره اون وقت منم باید پول قرض بده واسه قفش قره منم تو عاقل میرسه پایستا ببینم بیا پایین کجا بودی؟ چرا الان بیان مدرسه؟ آقای اجازه رامون دوره راد دوره؟ یا بازیگوشی میکنی؟ دیروزم دیر اومدی مدرسه این دفره نیبخشمه یک بار دیگه دیر بیای مدرسه راد نمیدم چشم حالا چرا کفشاد خیسه؟ آقا اجازه افتاری تو جوب افتادی تو جوب؟ چرا شلوارت خیس نشده؟ آقا اجازه جوبش کوچیک بود جوبش کوچیک بود؟ چرا جرابید خیس نشده؟ بار آخرت باشه برو سر کلاس درست چش آقا امروز با تیم شاهین بازی داریم امروز با تیم شاهین بازی داریم علی جواب می که نمی بیام مادرم مریضه. به ساکت بشین کارم تموم شه درست بشین بشین بشین خب اونایی که میخندیدن الان گریه کنن به جز 15 نفر بقیه نمره زیر ده گرفتن البته سه نفر نمره ممتاز گرفتن کریم نانبا علی مندگار سلمان نجفی اون سه رو که گفتم بمونم آخر زن کارشون رو با عجلی به طرف خونه میره؟ چه هر چیز داد کردم وای نستادی کجا داری میدی؟ دارم, دارم میرم زنف کپر خانمو بهش بزن برای ما آشون نزده با من قهری؟ علی خودکار تلایی قشنگ به زهر رو میکنم قشنگه؟ از کجا آوردی؟ معلمم به امجای زداد برای تو بگی بگی لگه برای خود من به مامون چیزی نگفتم میدونستم دونستم انا مادر علی داره از توی قابلمه سوپ بینیزه توی کاسه علی مادر اون سینی رو بردار خدره علی داری رادیو گوش میکن این سوپو ببر برن کن سوپو برن کن سوپو برن کن سوپو برن کن برن من باشد. سلام سلام علی جون دست درد نکنه آقایت خوبه بابا جون بله باشی علی جان من به زحمت مادرت نبودم قابل شما رو نداره مادرت چطوره علی بله خوبه بل. سلام من بهش برسون دست درد نفس داد نکون. علی همسایه کمی کشمشو گردو می‌ریزه تو دستبری. دستبری. بپرمی. دست علی. نه خیلی برو. نه خیلی بابا جی. نفس دادات. استاد سلام برو بابا جلوس. مدرسه زهره از بچه ها تو صفن زهره به کفشه بچه ها نگاه میکنه زهره ایتفه نیتا چی میشه یکی از بچه های مدرسه های صورتی رنگ بوم شده اونو پوشیده ایام امتحانات ندید چند تا تذکر دارم برای شبای امتحان ببینید بچه ها شبای امتحان شما میخواید نتیجه زحماتتون رو ببینید بنابراین ما از تلاش بیشتری بخواید میریید زی باید داشته باشین و من با خونه بادارتونم صحبت می کنم یه جووری خونه رو برنامه ریزی کنن که شما بتونید راحت درختون رو بخونید. شب نبا تا آخر شب بیدار بمونید سریال ها رو ببینید. شما فقط یه وقت محدودی برای زنگ تصویری تو خونه داشته باشین کارتون ها رو ببینید بعد دیگه فقط درتونتونور میخید از مادرتونم خواهش کنی که اون درس را ازتون از از از بپستم. بعد که اون در س پر شد دیگه خیالتون راحتی. خب ضررا توی حیات چشم کفش بچه ها دوخته و به دنبال دختری با کفش صورتی می گردید ج که وقت دارید تو خونه ناخن تو رو کوتاه میکن؟ شابه من می بینم همه باید باید ناخنشون تمیز باشه. چرا؟ برای این کزیر ناخن تون میکرووب میشه؟ اگر که شما؟ با اون دستتون بخواید قضایی بخورید یا دستتونه به به مالی حالودگی بدن میشه و شما رو مریض می کنی. حرکت کنید حرکت کن نختارم بپرمایید کلاف بپرمایید عزیزم برو نختارم بپرمایید به چرا تو تو در آمدن و لاک پشت را هم با خون بردن برقا بالا برقا بالا برقا بالا, بالا. توید دارم دفترم بر نیستم تو حواست باشه زنگ تحقیتون رو درست استفاده کنی زنگ بد ریاضی داریم حواست هست زهران توی حیات چشم کفش بچه ها دخته و به دنبال دختری با کفشای صورتی میگرده وای دختر رو پیدا میکنه کنار دیواری وای و داره لواشت میخوره زهران میره کنارش وامیستی ولی هیچی نمیگه بیرون مدرسه پشت درختی قایم شده دختر با کفش صوبتی از مدرسه میاد بیرون زرا پشت سرش به راه میافته دختر میره و زرا همینطور دنبالش دختر وارد خونه میشه زهرا از دور میبینه علی دیر به مبرسه رسیده این دفعه دیگه چه دیر اومدی؟ کفشت هم که خیز نشده بیا پای. بیا بینم درم برو بینام مگه با شما نیستن. میری با پدر این نیه مدرسه آقا جزه، پدرم سر کاره خب بگو فردا بیاد یه آقا جزه، بردم با سر کار خب با مادرت بیاد آقا جزه، مادرم محریضه من این حرفا سرم نمیشم با بچه بی نظم و بی مسئولیت اینطوری طوری باید برخود کرد یه لبینم بود بودو علی در حالی که گریه میکنه به طرف حیات مدرسه میره معلمش به حیات وارد میشه و علی رو میبونه چش دارم میکنم ها؟ چی معلمش میده با آقای نازم صحبت میکنه مندگار بیا در این دفعه رو به خاطر آقای جعفری می‌بخشم دیگه تکرار نمیشه برو سر کلاس بفرمایید خیلی خوب علی و زهر درم میرن به طرف خونه دختر با کبشه صورتی اینا هست کنه هست اونجاست در خونه باز میشه دختر کنار دیگر در خودشو قایم میکنه رویا رویا ایشه باز, باز بازی باشیم برگرده خوزیه برگرد خوزیه ای یه مردی که به نظر نابینا میاد بعد از دختر به کوچه وارد میشه زهرا و علی از پشت ستونی از دور به اونا نگاه میکنن پده. پده. جنون آره مرد نابیناست اون پدر دختره پدر و دختر به راه میافتند علی و زهرا را به همدیگه نگاه میکنن هر دو امگین و سر به زیر برمیکردن ایام فاطمی است پدر علی داره تو مسجد چای میریزه علی داره کفشای دمه داره مسجد و با یکی از دوستاش مرجع میکنه نهان قلا <gülüyor> <gülüyor> علی بیا این چای یارا ببریم حاجت کنیم ما ان شاء الله سلامت حریم گبلای تو هیچ او ستاو نایه از این آنه باش کال میستم خیلی خاتین جموسیم حاتم زهرادا نظر الله ممنون حالا مطمئنه که از پسش برمیان دو تا درخت سن پاشی چردن و تو باقصت بیزدن کار نداره بعدم گرانست پرخرض کنم مهم وسایلش بود چه حسین اقا داده حسین اقا برز وقتا میره خسی میگیره میره بالا بالا ها میده از وقتی که این کارشون رو چردم کل وزم خوب شده حسندازم میکنه فعلا همچه چوم است. من و علی میریم بالا بالا ها یه چرخ میزنیم هم فال هم تماشا علی و پدری سوار دو چرخه دارن از توی خیابونای بالای که پر از آپارتمان های چند طبقه هست الیو پدرش خسته و عرق کردی میرسن به محلی ساکت و خونه های بزرگ وینایی بریم علی من از این طرف تو از اون طرف زنگ خونه ها را میزن خب چی بگم؟ بگو باقبون نمیخواین باقبون یعنی حالا یاد بگیش ببین من چی میگم تا امین اینجا منم شما چی هستی؟ چرم خانم چرم؟ تا چی کار آقا؟ خانم با شما چی؟ هستی؟ یعنی... مرد با داری آقا؟ ببخشی... ببخشی خانم برو ببین چیه داری دار بازاریم شده؟ علی، علی بودو... بودو... باید ای وای پدرش سوار دوچرخه میشه و فرار میکنم از ابا آدم هستم من که به اون چیزی نگفتم بله سلام نده خیلی ممنون شما کی هستی؟ من. والله اسم من کریمه. کریم. با کی کار دین آقا. من. آقا من با عقون هستیم. در رو سامپاشی میکنی. خاکی وقت چاره درست میکنی. شاخه در اختیار کوتاه میکنی. نه آبادجو. نمیخواد. ماشاءالله شما خیلی بلندی. بریم سوار دوچرخه میشن و فرار میکنن اونا خسته و کوفته توی کوچه ای میشینن لبه جتوه. ولی نزدیکی یه خونه شیر آب میبینه و میره از اون آب میخوره و دست و صورتشو میشوره پدروازه کت بگو باقون نمیخوان تو باقونی من نه بابا بابایت گو جاست همینجا تو گوچه حال به پدروازه میگی بیاد اول اسم بگو اسم من علیه اسم من علی رزای کلاس چندی کلاس اومم حال به پدروازه میگی بیاد پدروازه کم خوابه بچه رو زشتر مکافی علی بیا بیریم علی من دارم اینم خدا حافظ علی بایدن وای پدر بزرگ و بچه میان دنبال علی و پدرش یه چند تا چیزه کود گرفتم برای درخت ها که باید زحمت زحمتشه بکشی و بعدن هم سمپاشی خواهش میکنم مخصوصا این درخت بله. جیلاس و زردالو اونها را خودم کاشتم هر سال من سمپاشی میکنم یکی سال سمپاشی نکردم بله. یکی دو تا از درخت ها را شته نابودش شد بله انی... متوضید آقا انی بیارم بازی کنی چش یکی, یکی دو تا از درخت ها را نابود شد. من پیش بیاری ن یه خونه بزرگ با یه استخر بزرگ پر از درخت و گل کتاب و الو کلکم داره علی و پسربتی با هم بازی می پدر علی مشغول کاره حسن نباشید بفرمایید قابل ندارد تاهش میکنم زیاده قابل شما را نداره دست شما درد نکنه زحمت شما چشیدید دست شما درد نکنید علی بیا بریم من هر چند با آمی همین برا به شما هم سر میزنم علی کارتون شد در خدمتون هستم الیو علی و پدرش سوار دوچرخه دارن از کچه ها میزدن اجا یه ماه برخصی بگیرم بعد از دو به جایی کاره بیام این طرف ها کل میتونم کار کنم علی ما وزمون انشالله خوب میشه. همه چی می یه مطور می یه کموت می یه اوتو برای مادرش، یه و بزرگ شاید خونه رو هم عوض کردیم گفتیم یه خونه بسرچی داره کردیم خلاصه همه چی میخرم یکی از را مرز ذرا بخرم اون چی چیزی نیست برای تو هم میخرم شبت ذرا رو زودتر بخرم آخی کفشش پاره شده سر ولی یا پدرش ثوای دوچرقه دارن از وای توی سرازیری ترمز دوچرخه نمیگیره هر به زمین میخورن پدر علی با پیشانی که با دست بسته شده همون با که خواهده دوچرخه عقب یه بانتبار نشستن و درم به طرف خونه میده شب شده علی و زهرا توی رخت خوابند پدر علی داره دارو میخوره لین اخو حرفای پدر و مادرشو میشنوه امروز دوباره اخ برای اومد بود برای کرای خونش عصب آدم بی ادبه من چند سه روز پیش رفتم پیشش بهش گفتم همه روزا پول میار دستم میارم بهت میدم اون که گوشش باید. به این حرفا بدهکار نیست امروز دو ساعت تو حیاط نشسته بود تو تو بیای بی فردا میرم پیشش دست خالی که نمیشه خدا بزرگی ناره نباش مگه با این حال روزت میتونی بری چی شده هیچی نشده با. زهره از مدرسه تعطیل شده با عجلی شروع به دویدن میکنه خود خواهی تلایی از کیفش میفته رو زمین متوجه نمیشه ب به کفش صورتی یا اون یا خودکار رو بر می داره زهرا رو صدا میکنه دتر دتر زهرا با عجره می دختر به دو به دنبال زهرا را میفته هم این رو یا دیگه زهره رو نمیده زهرا میرسه به علی که توی کوچه منتظری مدرسی علی <تصالح> یه دوره مسابقه دو سرانوردیه که در مقادهای مختلف سنی در سطح استان قرار چی برگزار بشه. اولین دوره این مسابقه از کلاسای سوم و چهارمه. حالا کسانی که تمایل دارن مایلن توی این مسابقه شرکت بکنن، بیان ثبت نام بکنن. بعد از اینا ای امتحان گرفته بشه. رویا تو خونشون داره با خودکار زهرا مشق مینویسه مدرسهٔ زهرا زهرا به ترشای صورتی نگاه میکنه چی؟ با لبخد خودکار از رویانی. پدر رایا میره تو مغازه کفش فروشی آقا دور ببینید این بنده خدا با شما چی کار سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشی خیلی ممنوع چی میخواستی بابا شما؟ یه دفت کفش دختر نمیخواستم که قیمتشم مناسب باشه شما شماره شمارش که نمیدونم اما کلاس اوله کلاس اول با. پدر زهرا و علیم اومده همین کفش فروشی آره بیا باقای این دو مادر کفشی رو میخوای رنگش چیه یکیش قرمزه گولش همرنگ خودشه یکیش هم, هم بنفشه گولش زرد و قرمی زرز قیمتش مناسبه با هم کنار بیان زرز و همین خیلی خوبه خیلی ممنون سلام نمکی رسیده دم خونه رویا مادر رویا مقداری نون خوشک و همینطور یه روک کفش صورتی دخترانه به نمکی میده وای رویا کفشایی به نفش خوشرنگی با گلوی قرمز میپوشه و میره طرف مدرسه تو کوچی به زهرا میرسه شما از اون طرفه خونه من از اون طرفه کفچه ها چه خاشنگه کازو خریدی؟ بابام برون خریده کفکونه ها تو چه کاش کردی؟ مامانم انداختش دو انداختش دو؟ چرا؟ برای چی؟ باره شده بود دیگه و هر وقت چند تا بیسی می گیرد. بابا برام یه چیزی می خرد. این دفعه برام کفش خورد زهرا بازم چی نمیده تا دران مسابقه دو میدن و علی با حسرت از پشت پنجری کناس به اونا نگاه میکنه <تصفيق> معلوم ورزه شرایط و جوایز شرکت در مسابقه دو رو, رو روی یه مقاوان نوشته و به دیوار نصب میکنه آقا سوانیست آقای شما مقاوان نشدیم آقا ما چه خوب دایدیم آقا ما خوب دایدیم آه، چه خبره؟ قرار نبود که همتون انتخاب بشین از هر مدرسه 5 نفر ان شاء بعدی ببینم ببینم مرتس خوش باشون دو هفته میان مدرسه خوش به دادم است ای علی میخونه که یکی از جایزه ها یه جفت کفش ورزشیه آقا اجازه بیاتو چی میخوای آقا ما میگیم نوزاد و شرکت کنیم je یه کم یزدودا می‌دی. حالا چیکار می‌گیری؟ خوابت بودی بود؟ آقا ما یادم رفت بود. این دفعه که برگزار شد. مسابقه بعدی یادته؟ من ما نمی‌خوام تایم مسابقه بشه. نمیشه پسر جان. آقا تو رو خدا. گفتم نمی‌شه. آقا خیلی هم می‌خواد تو مسابقه باشی. دلخوایی نیست که پسر جان؟ اولاً پلیس امتحان می‌دیدی. دوماً تولدش که تموم شده. اگه تو اونایی که می‌خوای من تو پسر گفتم نمی‌شه نمیشه دیگه برو فکرارت آقا جاهز من قول میدم برنامه بزنم آقا تو رو خدا اسممو هوبالینسی آقا جاهز من از همه اون می‌ذارم من قول میدم برنامه بزنم آقا تو رو خدا اسممو معلم قبول میکنه <متصفح> علی توی حیط مدرسه در حال دویدنه و معلم ورزش با تایمری در دست داره براش وقت میگیره. لی خوشحال نریسه خونه زهرا داره توی حیات کنار ها ظرف میشوره زهرا یه خبر خوب چه خبری؟ من برای مسابقه انتخاب شدم چه مسابقه؟ مسابقه دو پس مردان به کسی که نفر سوامشه یک شب شکتونی نو میدم چرا به نفر سوم برنگ جایزه نفر اول دوم یا چیز دیگه است آی یو سِووم اوندان کَتینیار میدم به تو. آخا این کاپشو پسرونه است. خوب کوی نداره چون کاپشو دونه आवाजش میکنه کاپشو دونه برای تو میگیره. اگه نفر سوم نشدی چی؟ من ادمین سِوومم میشم. روز مسابقه است. علی با هم مدرسه ها و معلم ورزششون به محل مسابقه میرسن. بچا رو دو تا آماده کن دیر شده. دیر پای میونام بچا. دیر پای میونام. بذار لپاین، بذار لپاین. دو وسعتونو در دو وسعتونو در بیارید. زود باشی ایلا چه باشی ایلا چه باشی یک دو <inning> درست درست من ماه مسابقه بچه های این توجهفت داشته باشی، طول مسیر مسابقه کیلومتر. دور دریا که انت های مطابق موواور همدیگه باشید به هم تنه ندنی برنده شدن نیست مهم اخلاق و برای همه اون آرزو موفقیت میکنم حالا همه گی آماده؟ یک دو بچه ها در علی داره یواش یواش به اول صف دونده ها نزدیک میشه اون خیص عرق شده و داره با خودش فکر میکنه علی رو زیاد میکنه اون داره از بقیه جلو میزنه صدای زهرا مدام تو سر علیه خیلی پسه شده من تو اگه من علی یکم قدم رو کند میکنه تا دو نفر او جلو بزند. علی الان پشت سر اون دو نفر دیگه است چیزی به پایان خط مسابقه نمونده اگه نفر بنده از پشت سر و علی نزدیک میشه آره نزدیکتر میخواد از علی جلو بزنه ولی علی به صورتش اضافه میکنه پسار همینطور از پشت سر و علی نزدیکتر میشه نزدیک و نزدیکتر ای وای و علی تنه میزنه و علی میفته دوباره بنامشه با تمام سختی داره تلاش میکنه میره به طرفی جلو میره میره چیزی به پایان خست نمونده علی همینطور جلوتر میره جلوتر جلوتر جلوتر پشت سر درافر اول داره میره جلوتر هفتاد متر باقی مونده سی متر معلم ورزش و نازم علیو تشویق میکنن علی میره بیست متر ده متر میره میره و پایان علی اول میشه. ماشاءالله علی عفوا برو چهلم آ ما شاء شدی سه تو اول شدی اول آفرین ماشاءالله علیزی اول شدی تو آره ولی تو سه علی رو میز ری توشک سه به فرش هر وقت که ما نداریم که بعد اولی برای پوشه جواب بده چه قائمت علی رو بیا علی با حسرت به کفشو نبانی کنید این اینجا رو نوا کنن همه اینجا رو نوا کنن همه اینجا. اینجا رو کنی یه مدال به گردن علی میندازن و یه کاف بهش میدم بردرت بفهمی اینور میخوای یک عکس تکی بگیرم؟ بفهمی خواهیش میکنم بفهمی سر تو بیار بالا قهر ما. دیوانا. ولی علی خوشان نیست او غمگین و سر بزیره دیگه. علی داره عشق میریزه زهرا کنار حوزدار شیشه شیر خواهر کجولوشو میشوره علی از در وارد حیات میشه زهرا با خوشحالی به علی نگاه میکنه ولی علی خجالت خجالتزا دوامیسته زهرا به کفشای علی ظلم میزنه کفشا همون کفشان همون کفشهای کتانی زهرا با ناراحتی به طرف اتاق میره علی خسته میشینه کنار حوز کفششو از پاش در میاری کف کفشا پاره شده علی به سختی و با ناراحتی جوراباشو در میاری انگوشتای پای علی زخم و زیلی و پر از تاول شده علی پاهاشو میذاره داخل حوض پرآ های قرمز توی حوض دارن میرقصد. بعد همهشون دور پاهای علی جمع میشن. وای انگار ماهی‌ها دارن پاهای علی رو می‌بوسن عزیزان شنونده این برنامه با صدا برداری همکار عزیزمون آقای علی حاجی نوروزی و تهیه کنندگی همکار گرامی آقای فرشاد آزمیا و اجرای من شمسی صادقی به شما عزیزان تقدیم شد